اللهم <سؤال> <محسن> الله <سؤال> به طاهرین عالم شدی؟ بس حکمت که و یکی از ما تكلم در یا در تقریب اصطاق ممنون مقدمه دو قرار براده بدن از شد که در تقریب این مطلب ممنون اول ممنون کسانی که وزی خوشیت سکور رو کشف مراد واقعی متکلم می. این ماهنی صحبتیم روی این ممنون است ممنون به این حدیقی ردیدن که گاهی میشه کرام از یک جهت در مقام بیان هست از یک در مقام بیان نیست همین مثال آیه مبارکی فید رو زدن فرکلوم موام سکنه فرمونه میگون آیه به لحاظ مکانه به اصطلاح گذیدن سگ و چنگار سگ اطلاح داره چه محل زرب باشه گلو باشه دستش باشه چکرمش باشه فرمونه که از برزش خالی سرده خون رفت تا سید مورده این از هر موزه باشه اطلاح داده اطلاح این جهد منرده در محال و بایده. و اما به در حال اینکه محل گازه چنگاله اونسک آیا خاش هست یا خاش نیست این تاوارد من اجازت محل از رای کلب و محل گزیده سر این به این جهد اصلا بیان ناظر نیست در بیان از این جهد نیست و از, از این خلاصه مستی بود که ملکومه استاد در اینجا بازم تکرار کردن البته این بس اخصاص به ایشان نداره از در کلمات نامیده از جواهر جواهر بزار شیشه بچن. در اونجا داره رفت این باید ذکر میکنه که ناظر مقام اطلاع از این جهت نیست اما خب در معنیده هم ما روایت که تو تخارت محل به اسطلاح روایت این هم به به همین اطلاع و عدد اطلاع کرد از شیخ توسی قد الله نفس, نفس در بعضی کتبش و از که که به کرد اطلاع کردن مشهور تاکر نمیدونن که به از که یعنی مشهور تمسو کردن به اطلاعات که در باید انالله درمی اطلاق خبر انجسون در کن به اطلاقاتی که ملاقات بالا آب درن سگو با قدر سگو بسمت عطوبتی سگ مون که به نجاست میشه به اون عدل تمثق کردن نمی به اطلاق فکر کلوم ما هم سگ نردیم اصلا که دیروز صحبت شد که اگر ما باشیم مثلا که به اطلاق کلو که عرضی متوقف نیست و سهارت تدیر به ذهنی هست که این اطلاق اطلاق مقامی باشه اطلاق لفظی نباشی اگر بگیم آیه مبارکه ناظر مقام اطلاقه یعنی ناظر مقام بیانه فرقی بین این دو اطلاق نداره هم اولی رو می هم از هم دو و اگر بسید در مقام بیان نیست نه اطلاق اولی درسته و دو دوباره هم درست نیست مثلا بگیم زاده آیه باید اون ناظره به اصل تشریح یعنی به بارث نخران ناظره که حدیلیت موشتی حیوان همچنان که با زر ممکنه با بریدن گروه و خروج مردار متعارفی از کن حدیلیت لحمه حیوان با سکر و شکار هم ممکنه و کلومه ما هم سخت نعره کن از دینه هم سخت این ممکنه که و اصطلاح اون حیوان به خاطر شما رفته اون سیر رو گرفته امسک نهلی اما اگر پسید یکی سکی تو بیامون داشت میرن که یا یک آقور رو خورد نسوشه برای محلاش رو اینه نمیشه خورد این کلومی ما امسک نهلی کن نیست اون امسک نهلی کن باید امسا سبقه امسایی این نهایه باید که ناظر اسا در مقام اتذاق نیست حلا از فرضکنی گلوی حیوان رو پاله کرد گاز زریو با چنگال پای حیوان جدا کرد انقد کن از حیوان به مرد د که اطلاق داره جنی این موار ی و اون کسی که میه در مقام بیان نیست میه ن این که مرحم استاد میفرمان از یک جهت در مقام بیان هست یک جهت در مقام نیست خودش مطلب رو حل خوده این واسه ادعا یعنی ادعاست خوده این نمیتونه من رو روشن برونه. این مطلب رو یک بار دیگه هم ایشون فرمودن یعنی دو بار زنیز رو یه بار هم در این که آیا متکلل تو مقام بیان هست یا نه ایشون در اونجا که در بحثت این چاپ این چاپی دارم من صفحه 369 و ایشون میگه که مسا این نعلم به آن لیکلیمیه اصلاحاً من جهت، ولی که نشکه فی اصلاحی من جهت اخره. ما فی قلی تالا کلوم ما همسک، اینج مسک نشکد شده است، ولی ما همسک ناله. هیس نعلم به اصلاحی من جهت آن نحلیه تعلیه لا تحتش یا له امشاقو سوامون اکان امساق رو من محل الزر و من مرز این آخر کانه الى قبله و الى غیره ولیکن لا نعلم انه او فی مقام بیان من جهت اخرى وهي جهت تهارة و هیه جهت و طهارت محل امساق و نجاستی ففرکشنس مثل ظالم لا یمکنست هم از سکر اطلاع کما عدم قیام سیرت حالا حمل کلامی هی فی مقام بیان چون سیره اوهلایی نیست چنین سیره اوهلایی وجود نداره که کلام رو هم بکن در مقام بیان از اینجه هست واضح نیست اینا به اصطلاح مثل مصادره به محطوب اصول هم مثلا فرصلا شیخ انسالی شیخ توسی قادم شده به طهارت مثلا کلام خلاف سیره اوهلا مثلا خلاف سیره اوالا. که این مطلبیشون گفته شون سیر و قدرانیست تمثل در مطلب ما روایت نداریم بیدیمون که از طبق قاعده است. و سر این نیست که از سر اینه یعنی این یک جهت خاص خودش رو داریم و اینه که یک ما برای تمثل به اطلاع اصولا نیازی به مقام بیان داریم یعنی همین لحظ خودش کافی است ما احتیاج نداریم که بگیم مراد جدی واقعی یه متکلم چی بوده مراد واقعی چی بوده ما کار نداریم لفت که باشه وقتی گفت جنیب ماهه ما حالا ما چه اطلاح می لذا اینا محام ویان رو چرا بایدن؟ که بگن خود محام ویان بودن یک قرینه ی آم میست که بگه این که حالا اطلاح اثباتی هست در ثبوت و در واقع اطلاح رو میگیدیم محام شد قی کافیه وقتی گفت جهنی به ماه حالا چه به دواز جهنی باشه مجی باشه مثلا خودش بیاره دستور بوده براگرش بیاره رفیقش بیاره, بیاره. فرسوی با دست بیاره روی فرسوی مثلا روی از این چرخا بذاره چی از این میگه چرا که چرخا بایداره بیاره هر جایی جوشت جهنی اصلاح مقام افتیارش مقام بگم جهنی اصلاح داره ر از بحث سریع قسمت نیست که مرحوه استاد قیام سیداره خب این اگر شد هیچ فرق ده. در مقابل بحث دیگه ایست که بشتورم اهمال نوشه اهمال نوشه بخش نیاز به بحث قانونی این اصلا کاری به قانون نداره خود استاد هم عنوانی که مطرح کرده هم یه بحث دیگه قانونی این بحث لحظی و متکلمه عامه هم یه بحث رحث قانونی نیست بله یعنی این حض مثلا الان شده حالا در زمان قرآن بودی یا نه بحث در مقامل قوانی دو جور قانون را میکنه یه قوانی که سقط ناظر بحث تشریعه یه قوانی که نویزه کاری ها میدید رسط شدگی در زمین یه الان بحث شد و اگر آمدن گفتن که در اسلام هم همینطور بوده در قرآن اون قوانین کلی مطرح شده و در سنت رسول الله اون روی ها اون زرافت کاری ها روی زکاری ها توی سنت آمده به آیات آریات قرآن در مقام اصل تشریه ناظره به خصوصیات نیست خب بحث دیگه ایتون همین پیام سیره نده که اگر این مطلب متن تو اون وقت نه به اول میشه به تنسیلی لاتر نه به دوم. این بحث شک در مقام بیان و تو مقام این بحث کلا خونده که اگر شک کردی در مقام بیان هستی یا نه اگر شو بگرده این جرد که نه سکونه جردیگه نه تو بگیم در مقام بحث شک و مقام بیان و این حرفا مطلب میترد تو داره. صحبت این مدره همیست که شک بکنی که مقام بیان هست دقیق میکنی خب ما واضح می‌دونیم در قرآن تا مقام بیان هست در سنن بیغمبر تا مقام بیان هست حالا ممکنه بعضی از آیاتی که تا روی در مقام بیان باشه ممکنه شواردی باشه به طور طبیعی قرآن ناظر به حصل تشریه فکره نه این که حالا آدم حتما اگه سرکه هست و سرکشم بخوره چونه به همه کلون کنایت کنایت چیز یعنی با هم تذکیه واقع میشه الا مادرکتون در, در آیه دیگه یه نقص قانونی که گوشت رو بدون تذکیه نمیشه خود گوشت غیر مزکا حرامه به غذای و نجیست هم هست الانیتونی نجیستش یکی زرافتی هست در شما وقتش میده نیست سه معات نجاست غییر مدکر قبول نجازات می را قبول داشت چون معثابق و بعضی معوطللا میته غیر خیر مدکرست. میته یک عنوانه. عنوان اون جودی است یر مز کار رو ار نیست، خرم رو برای هم برای میته هم غیر مذکاره. اما نجاست رو برای خصوص میته میدارن نه غیر مذکار. عنوان غیر رو، نجس نمیدنم لذا ی ف مند که اگر شک کردیم در ی گوچ مس گوشت مار تذکیه شده یا تذکیه نشده اگر مثلا آب گوش درست کرد آبش میش خورد خود گوشه نمیش خورد ن آبش میش خد ان مبنوع نجاست رو اثبات نمیکنه میگه شما با اصل اثبات میکن ن غیر است، اما با صر نن این ان میو مشروعه در کلماتی با اقام غیر مذکار و از شما پیش محمده. غیر مذکار و میته یکیه فقری با هم نزده اما ایشون غیر مذکار با میته دو تا میده اون فسط و اون فتواه هست ولی از در هر حکمی مثلا حکم آمد که در لباس میته پوست میته جلد میته نماز ده هم. از اونجا غیر مذکار میته نیست جلد میته اگر شک کردیم خیرمیت بودنش اصفاد نتونه بود یعنی هر حکمی مانعیت نماز ازن نجازه خیلد کرد حرمت انتفاع، حرمت عرق هر حکمی نجازه هر حکمی که هست باید لسالدهی ملاحظه ملاقظه توش توش خیرمزکا عقص شده یا میده این روی مردانی مردم استاد از اصال الله نفسه که احتمالش را چندستانی هست در شرد روم این بفرود که اگر حیوان این نهوان باشه بکنه به تهارت لحمه و تهارتی و خرمتی همهلاً به لحمه ما بارد توسی شردان احتمالاً ایشان هم نظر بارد که به همین باشه که بیه که اصاط تهارت جاره میکنن به نصف دون جسد و نصف دون هم اصاط علم تفکیه و با اصاط علم تفکیه نجاست ثابت میمیشه با ساده عدم تضییع فقط بر متع عقل حساب میشه اما نجاست دیگه صابت علی بحثی خودیشه جس اینطور متعد میشه و شاید دوماحل حتی باوریم نکته فنی در حقیقت در این بحث حالا من بعد آخر بحث انجامش می کنم فنی در این بحث در حقیقت اینجاست اون نکته فنی در حقیقت اینه که آیا مثلا ما در واقع تمثل که به اطلاع به کلام متکلم مطلقا نگاه میکنیم یعنی به ارفعان براجعه میکنیم و به شواهد لغت میگیم جمعه همه مطلقه. مطلقه مطلقه ما مطلقه این ها مطلقه و همی که متکلم یک کلام یه و برش نگوید هم برگی بر اطلاع میشه ما کار نداری نوز این بیان باشید درست اگر این شد چند جور اطلاق و سرشت اطلاق لغویش به اشتباه کرده اطلاق مستر. و اگر قابل شد که خیر ما پی مساله مباحث قانونی داریم بحث کلام و متکلم و متکلم در و این هروا محره نیست بحث قانونی است در بحث قانونی باید ببینیم اون قانون رو که دارین بررسی میکنیم چه قانونیه اگر یه قانون نیست که میخواد تمام خصوصیات رو بگه تمام زرافت کاری ها و حیزه کاری ها رو بگه خب نگفته باشه تناسیه که اصلاح هم اصلاح لفظی جاری میشم اصلاح مقامی اصلاح مقامی لفظ نیست اما با توجه به خصوصات مقام استعباده میشه و اما اگر گفتیم نه یه قانون نیست که نازل به خصوصیات نیست هر دو اصلاح شده نمیشم فهم یا مثلا گفتیم در شریعت مقدسه خود قرآن چیز نیست به اصلا به عنوان قانون مثل قانون مدنی نیست خود قرآن به عنوان تشریه اصل تشریه و تحبیراتی مثل کلو هم این ناظر به اکل یعنی خوردن که چیز دان بگیاریم و به جوهی نیست حیعتش هم به معنای عمر نیست هیچ کلوم ما هم یعنی با گرفتن سگ شکاری حیوان تسکیه میشه این کلوم این اختصاصی اینجا هم نداره. مثلا پس آیه ای هم بالا که دارد جناح علیه کنه داری این آیه رد دره و این زیاد انتر کنه بیوتی کنه بیوتی و آبای کنه اون مملکت و مفاته هم لارد جنا ها حالی با انتر کنید از این خانه ها خوردن اشکال نداره خونه. مثلا خونه یکیشی درشان روزن حالا خالی مراده از این حد فقط خصوص خوردنه مثلا توی این خونه توی افتارش قضایی بود بخواهی یه این حد کنایه از مطلب کسر رو اگر مثلا ادهه از همین آیه از کردن که نماز کنده توی اون خونه اون ولو آیه ناظر را اکل ظاهره میگه مراده از اکل اون تصرفات متناسی بینید تو خونه رو تلسیف میشین رو پتویش میشین پتویش رو خوص ندیلله ها رو تصرفات که اکل نیست این تصرفات سندری در رو تندری میشین تلویزیون رو تلیویزیون رو دقت میکنی اینا اکل تصرف هم به سهل کنجونا هموند فرکلوم این کنایه <تصفح> یعنی این تصرف و فاتش صحیحه این ناظره به اینه نه این که ناظر به عقل جارهی باشه که تو دو هم بگذاریم این خصوص او حالا اینجا هم همین در قدر بکنیم فرکلوم ما انسخنه این اشکام به شیخ والد میزنه اینه هر اید. بگیم لحظه به قیام سیر بسی سیره میگیم بسی سیره برد بحث احساسی در اینجا که ما باید موقعیت کتاب رو در قانونگذاری اسلامی روشن بکنیم بحث احساسی یک دو نحوه ما با برخورد با زواهر کتاب هم روشن بشه بگیم برخورد ما با زواهر کتاب با بقیه موارد لغت خرم نمی کنه خاصی نیست محیط خاصی نیست ادبیات خاص قانون نداره همچنان که در جنی به ما این حمله بر اصلاح میکنیم تو احلالله الله به هم حمله بر اصلاح میکن. کار به ما هم. پس اینا خودش یک زیر بناهایی داره یکی زیر بنا و زیر تفکر اساسی با داره تفکر روی اون زیر بناها کار کرد این که اصل اولی است که متکلم در مقام بیان باشه یا نباشه اینا ارزش واقعی ندارن یک نکاتی که اون نکات اول باید روشن بشه بعد بیا من اون نکات برد روشن کنیم توی مقوله دروم البته از کردیم مرموم استاد در عوائل کلامشون در تقریب این که مسکلیم در مقام برم باشن اون راهی رو که من رفتن که بیان تمام مراد تمام مراد واقعی تمام مراد این اگر متکلم توی مقام بود که تمام مراد واقعیش رو قدم بکنه و نیورد و وقت آ سال باش آن اینجور بید لیکن بعد خود استادی منطقه رو گفتن اما این تأویر رو نیوردن دو جایشون رو برای که ما با آشنا بشیم. دو جایشون اشاره دارن که همین صفحه 369 سطح 4 بله منجر تندن متکلی اوکان فی مقام اصل تشریف اوکان فی مقام بیان تمام مراهلی چایی از امروز بحثش تعبیر نگردن اما اینجا آوردن من تقریب کردم از خارج اما توی ایشان نبود از خالج فروری داد ایشان آوردن فی مقام بیان تمام مراهلی این نقطه اساسیه این متکلیم در مقام بیان بودن از در مفید 370 در سطح دوم میشه این جور فرمت و حالا جمله فعل اراده و تحقیقیه یل لغت فعل و اظهار تلاع مقام اسباب فعلا ما می‌تّكلم اراده تحقیق شیء این یوبردهو فرخارج بلع این هر زن ان لم یصق قرینته منفصله علاشلا کشف ظاهره که ان اراده تخیییه مطابق چون ده اراده جدیه و امران لم تكن مطابقت اثر آنها ایشان از اراده تخیییه همین نکته‌ای است که الان عرض کردم بیان تمام مراد واقعی این اراده تخیییه یک تغییر کردن اراده تخیییه این اراده تخیییه چی تو قلم یعنی متکلم در مقام بیان تمام اراد ولیذا در حقیقت از عبارت ایشان سه اراده استفاده میشه اراده تفریمی که مراد واقعی باشه اراده جدی و اراده استعمالی حالا آیا با حالا آیا سه مرحل از داریم اون بحث دیگه بید. از ظاهر عبارتی ایشان همینطوری کنان خارجا تا توضیح بردون این عبارت آخریشون نکن فریشه این توضیح را هم نبخونم امیشه محضی برزیروز نگاه کن ارادت و تفیمیه در عبارت ایشان یعنی همون بیان تمام مراد واقعی بر عبارت ایجردی که جاید؟ ارادت ایجردی برمیگرده به مقام لحظ ارادت تفیمی برمیگرده برمیگرد به حقوق نفس مراد واقعی هموند وقت در لحظ یک لحظ میاره که ظاهر در یک چیزیست این اراده استعمالی. ترینه میاره میشه مراد جدی اگر گفت حتی کل کن این میشه مراد استعمالی بعد در یک گفت خساق معلوم میشه مراد جدیش اینه حالا که مراد جدیش رو فهمیدیم پیده بیگه نهون از اون میفهمیم که مراد واقعیش هم اینه اراده سفیمیش اینه پس یک اراده تفریمی شد یک اراده جدی اراده جدی و اراده استعمالی هرزن مقام ابراز هست سبیت لحظه عبردن لحظه مقام اراده جدی شد یک اراده استعمالی اکرم کل آلم این اراده استعمالی لا سفرم حسطان العلمان اراده جدی اراده جدیش یعنی اون آلم فاسق اکرام شده از این اراده جدی میفهمیم که اون مراد واقعیش هم میده چیزی که غیر که بود حالا پس این فهمیم مراد واقعیش هم همینه اراده تفهیمی که صحبت کرد اونی که در افقه لقصش اون اینه شد. این سه مرحلهی که یا یک جا تعبیر کردن به مراد تمام مراد میگن مرموم آزی اینجارو خوبتر شرح داده ایشان همین آخرش مجلب رو آورده. دو سفر صحبش کرده یا این تمام امراض رو اونجا محضر کرد خب بود اول همون مثل که ما در اول مطرح کردیم، ایشون هم در اول می میکنم این خلاصه این محلویشان کما این که باز دو مرتبه یعنی باز هم ایشان تو این مسئله که اگر شک کردیم مثل که البته ایشان یه حالا چمی هم بخاطر به ملانا قدی شدن به قول مرد درمون 367 بله ایشون در این که متکلم در مقام بیان این چی؟ ایشون اینجور می مثلا بله بل المراد مراد از این که اولیشون گفته بیس المراد من عدم کونی فی مقام بیان انلایتون فی مقام تفیم اصلا مثل ما ادا تکلمه به لغت انلایت مخاطب من هاشه هم که ما اگر تکنیک آرایب لغت فورس هم نمیشه مخاطب حیزیم عکیاب روگوی توضیح و اظهار نماید من بحث ما اوس نکنیم. ما با یک نفری که مخاطبش به زبان عربی و زبان انگلیسی و همیشه دلیلیم داریم. بعد قوی قابل باور با یک زبان که کردن لغت بحث اطلاق و اگر کسی به خواهده همره قانونی رو اصلا بالغتی که قابل تفریم نیست مطرح بکنه که این نیست اینکیشون در مقام بیان لاعقل عربی باشه مجمل باشه یا محتمل و رجعین باشه یا زو باشه اما اصلا از زبان سر مقابل نباشه میگن تو مقام بیان نیست اصلا این هیچی نیست نه این خیلی بله مراد و منحور اندل یعن عقله کلامی ظهور و اطلاق نه فهمی هیچ جور مقام بیان بودن این است که لا یعن عقله کلامی ظهور و اطلاق این که به حساب معروف مثله معروف دور لازم میاد در دو اطلاق از اطلاق مقام, مقام بیان مقام بیان به این که اطلاق بر کلام منعقد بشه اگر نشد در مقام بیان نیست وا چه عرض بعد مثال همون قول تبیین للمریض اشرا به دواف این المریض یا تماماً اناهو لابده منشور به دواف ازاکه نهو لیسه پی مقام بیان بل مقام احمال ولی اجمال من دفعیم این سوی کم احمال بل اجمال ظاهرش تفسیر گرسن از کردیم یک مقام احمال داریم یک مقام اجمال داریم مقام اجمال هم به لحاظ قانونی مشکل نداره مثلا بگه در این قانون اساسی با همه کشورها میشه معاملات تجاری داشت مگر اونهایی که قانون معلل میکنه میگن مشکل نداره خود متن قانون دارای یک اجیمال باشه نه اینکه لغت دیگه گفته اجماع درش باشه اجمال. لغت دیگه یعنی مراد اون تعبیر قانونی مثلا معامله با همه کشورها جایز است مگر اونها میشه بعد قانون معین میکنه شأن علامہ طه عاصمی هست اور حد لفظ بعیضه الانعام الا ما یس لو علیکم پس مراد از مرام اجمال اینه یعنی خود لفظ خود لفظ خود لفظی که آورده خود اون لفظ اجمال ده. خود اون لفظ معنای خاصی نداره الا ما یس ما ما ی موضوع در وقت تعریف برای معانی اجمالی رو که این. اما مقام احمال بس تن لفظ نیز نداره او در مقام اصل تشریه نازل و خصوصی این که این که مثل مریض اشرا به دوا این به یا یا این که اما فی مقام في احمال ولی اجمال به اواغ رو یعنی مثلا فرمی نمکنن این سو با همون مثال دکتر هم دو جور دکتر میتونه صحبت بکنن یه درست میگه شما باید دواب بخوری این میشه اهمالی یه درست میگه شما باید دواب های خودتون رو بخوری این که اجمال چون دواب شما اگر نه در زبان خواستی هم در زبان خودو بقید کردی پس اهمال خیلی از اجمالی این طور نیست که همیجور برای این کسیم نشیم یا بلا نست کنند اهمال و احمال نه؟ واقعیت قانونی داره احمال یک واقعیت قانونی داره و اجمال هم یک واقعیت قانونی مراد از اجمال یعنی لفظی رو به کار ببره که به معانی مختلف میشه علاقه شد احمال لفظ به کار نبرده اما خودش هم نمیشه علاقه معانی مثلا ذات معاییت و مثلا ترسیم تمام افراد رو کرد این استراله میگن مقام اجمال ولذا کوبی قتل بکنه مقام احمر اختصاص به اقمش نداره داره، سوامان جلویش میشه مثلا سا او فو یعنی هر دین اهل الله را به او فو بر به این نکته نمیکنه. این همون مرام احمر نه مرام احمر. او فو بر او بودن در اصل حسیه اهل الله نبودن در اصل حسیه. اون فردی در اینجا در بین نمیکنه. بعد مسئله بیگری که مطرح بود مسئله عدم غرینه بود که از کنسه مرمومه نایینه از توضیح نهدن بیفینا مارکویی فرمودن چرا که اگر غرینه بود محلوم بشه که مراد شدیش چیه از برم که بعضی محلومه رو محلوم, محلوم بشه بدیم شو اما این کلمه این که غرینه نواشه این من سابراً از کردم که علمای اهل سنت انصافم در مقام استظهار کتابی هیچ از اون میگذاره که میشه خورفن استظهار کرد کار میکنن مثلا اینا آمادن گفتن این آیه میگوارد که به قصد کنید بخشی تفاور فکلوم ما هم سک نه علیکم میگن این کلوم ما هم سک نه علیکم ایدوشون رو اطلاع بره احتیاج به شوستن هم نداره سک که گره باورد میتونید بخوریم بخوریم این یک تایف یاد انسان یه تا روشه نه این اطلاح به نظاره قرینه هم داره این اطلاحه که قرینه باشه و نباشه قرینه شیه اصلا قرینه آنه که وظیفه ما و هم, هم تشتیز داده اون قرینه اون روایاتیز که میگه در واب سر از اون ولو سر هفت مرتبشون یه مرتبشون با اینا آمدن اون روایات ولوه صد رو قرینه قرار دادن برای این آیه مبارکه دلک. یعنی بس در واقع این اونها و از تو علمان ما کسی این احتمال در رضا متعرضی نمیشن اما اونا ازده شد ازده مواطنهاده ایش هم احتمال داده. پس مراده از قرینه هم واضح شد چون آقا مرهواز رو جهدید و مرهوهایی بود خب غرینه باشه واضح هست سران مراده از قرینه تو ذهن شما ها مثلا ارتق رقل باشه ارتق رقل باشه مامونه میشه قرینه تقییب میزنه بیگه مراده از قرینه در اینجا لازم نیست مثل ارتق معامله باشه اینا میگن که وقتی که یک حکمی در جای دیگه بود اون گفت صلاحیت داره که در این جا هم که ظاهرش اصلاح جاری بشه در این چیه در این جا به رست فرق اون ما هم سک و ظاهرش اطلاقه این اصلاح منعقد نمیشه نه منعقد نمیشه اصلا وزیدتا رو بیان میکنه که شما باید جای اون چنگار یا دندان سک رو هفت بار هم دو شوی. یک بارش هم با خاک این قریقه اون به اونی کی در اونجا پیغمبر فرمون هفت بار باشده بشه یک بگو اولاهون نزاره اولاهون نزاره اولاه نزاره اولاهون به را ما نداریم ما روایت سه بار داریم یکیش با ترا اونا روایت حسن. ما روایت رو در یک مورد وارد دارم در خنزیر دیگه تراغ کش نداره یک سال و سب مراد یک سال مراد اما یکیش با خواهد دیگه تو اون مال خوک وارد ندرده تو خنزیر یا خوک اون وارد نشده و این بسته فقیش نمون میشه دقیق من مخاطر این فاید دوم مقدماتی هشتاس هم بردتون روشن بشه اینا معتقلن در فقر که فقر رو باید با هم بررسی ب پس ظاهر آقای مبارکه و کلوم ما امترک نبله کن ببینید یک از از علموان اهلسان و همین ظاهر تمسکا کردن گفتن پاکی شستن نمیخواد تا سر آبور رو برای شما بود رفتین آبوری هم نوریستی که پایش رو کلیگی تو دیگه بلدیم بخوادیم پاکی ازتیاج به شستن محله گردیدن و گردیدن و چنگال سرد با هم نمیخواد داشته باشه ادهیشون گفتم نه اون حکمی رو که پیغمبر در بلوغ کرو گفت اون خرینه میشه برای اینجا لذا اطلاق تو منعقید نمیشی چه حک میشه پس قرینه مثلاق مثلا بارد هم که شما است مثلا قرینه در ذمه اینه ارزقلقه بزن ارزقلقه بزن محمده میشه چه قرینه تو و که این نشون در بحث اطلاق میاره یکی از مشکلاتی که در دنیای الان فقه اهل سنت الان هم داریم با نه در همدماشون در عین همین نکته است و لذا اینها به بحث مقدمات حکمت و متکلمین در ماهم و یاران این حرفا حل میشه اینا باید با راههای دیگه حل میشه مثلا فرما هایزان همچی فرکایی ندادن چرا؟ چون گفتن اونجا روا داره اضاول اقل کلبوتی انا عهده کن ولو هم که سر درانشه توی انا بکر اما این که بزنه بزنه فرصیم مثلا با دستش با ناخناش سید رو بگیره و سید به این, این اصلا ولو نیست این اصلا ولو نیست اون پرکی که آمده مال عنوان ولوه اینجا که اصلا ولوه نیست تازه بناشون برای این که اون حکمی که آمده در عنوان ولوه در اناه حالا اگر سکر آمد رو احوال شما دهن میشید در بره احوال چرخون پست مثلا چرخون آیا باز سه بار شسته بشه یک بار با خواب مینام یک بار بست. چون بگم اونجا هم عنوان که ولوه هم ولوهی که در اینا باشه دقت می اما اگر با چنگالش در سید رو گرفت که این گلوخ میسته سیدر از انام میپیم نه صدق گلوخ می‌کنه، نه صدق انام می‌کنه. لذا اون حکم هیچ رفتی بیر این حکم نداره اصل نجازت تر خوبش یک باشدت لذا ام ادهی از اهلستانت گفتن بله اونجا حال حکم خاصشه اما اصل نجازت تر خوبش یک باشدت باشه دقیق کن، پس بنابر این خوب دقیق بفرمایید که مراد آیان به اصطلاح آلان شید پس مراد از عدم غرینه در حقیقت یک مشتری داشتن، اهل سنت یک جاهایی رو که اصلا قرینیت نداشته میعونن باید اینا پس این قرینه شد مانه از نقاق اصلاحه مثلا نه اینا لا یسرت للغرینیه این انشاء الله این که قرینه گفت و قرینه که اینجوری بحث ببینم که نه بحث سر این نبوده بحث سر این بوده که اینا مفهوم قرینه رو عنوان قرینه ها تخمین میدادن مثل همین مثالی که بر براتون آوردم اخلاق هم یا روابط اخلاق کلیشم هم دیگه موضوعات اون که اول طرفو مغاضر و اون اساسی که قبول میشن خب بعد از جمع کردن این مسائل خلاصه مطلب رو عرض بکنیم هر این از شراست این مطلب درسته و این مطلب برگشتش یک امر عرفی نیست حالا من بعد از فقهی امر عرفی نمی‌دونم این اگه امر عرف خاصه یک امر قانونیه در این امر قانونی همینطوره در امر قانونی وقتی شوم قوانین طرح می‌کنه اختلاف در حقیقت در مقدمه حکمتی است اختلاف در برداشتی است که ما مثلا اهل سنت در کلماتشون تعاملشون با کتاب در اطلاق و تقیید حرفان مثل سنت سرابایتی فهم نمکنه یعنی الفاظ کتاب رو ماده قانونی میدونن ما الفاظ کتاب رو خیلی هاشون ماده قانونی این رو آمدیم به عنوان مفرد کردیم که اینجا در مقام بیان هست اونا میخواستن بگن همیشه در مقام بیان هست اختلاف ما با اونها در حیقت این نکته اساسی است پس بست در حیمت یک بحث کبروی عقلی قول آیون و قول و تجریدی و انتظاری نیست یا به قول از از قدبی قطذای حی این آل بحث ها ازقدبی غذا حییه ماین خلاصه است. به نظر ما بحث از قدبی غذای نیست از قدبی غذای خارجیه نه غ قری. یعنی بحثی که در اینجا هست مثل یک بحثه آچون آ خصول رو مثل علمتر علم خالی علم میدونم. اینجا یک ای علمی ای نیست که صورت باشه و ماده ندشته باش، اینجا ماده پر نه به صورت باشه. نه من منطقه عرصویی که صورت از ماده نبیده اینجا ماده داره اون ماده خود و قرآنه آیا قرآن کریم در شریعت مقدسه مثل بقیه متون قانونی قابل تمثب به عموم و اطلاعش هست یا قرآن کریم در قبیل اونست که ما امروز قانون اساسی میگیم نازره و اصل تشریبه در بعضی از هم اجمال دارد با قصیه خودش. دوسته ارهیم درده کن و این مسئله اما آم الا مایوز و علیکم واقعه این یکی دو دوم تو خودش ابحام داره ناظر به اثر تشریع. دیگه ناظره بگیم نیست این ربطی به برده و برده هایی که بعضها در قرآن شد در اینجا اختصاص به اطلاق هم نداشت نکنید مثلا آیه مبارکه از کنو هون نمنحه ایز سکن تو منگوش بکن اونها رو مسکند بدیم دیمه ازالت حوانی این آیه مورد در متلقات رشعیه یعنی متلقه رشعی نفقه مسکن داره حقه مسکند زنی که متلقه رشعیه خب از آنها نه حوش ده که خب متلقه باهی نفقیم این بحث اطلاف نیست آقایی معلومه که در مورد متلقات رشعی این یه بحث کلیست که اصلاح هست می گفتن در کتاب و سنت می آمدن آیه کتاب رو یا تعمین میدادن، دادن یا تخصیص می گفتن این سنت بود بسی که در صحابه مطرح شد این بود خوب بپرس بکنیم در صدر اول اسلام اختلاف هم سر همینجای شروع شد مثلا امیر المومنی می این آیه مبارکه در مطلقات درشیز تو مطلقه بایین دیگه تمثب نمی توسعه نمی بود. اما هم گفت نه فهم میکن توسعه میکن متلقه متلقه مردش در متلقهات اما توسعه خود توسعه دادن موارد احکام در قرآن یه مقدار زیادش اشتر اصول پیغمبر شده مثلا در قرآن از محرماتی به رضا و مادر آمده اموی رضایی آمده، دختر در رضایی نیامده انابین دختر رضایی نیامده اما مادر و خوهر یه احرام امید رضا ما یه احرام امید یا یه احرام امید ما یه احرام امید نسد دقیقا این جا در حقیقت این طور بود بگه این اطلاق نیست این اصلا بسید مقام در یا اونو این تعمیم از کتاب لازم نیست بسید اطلاق و شهر این بحثای خاص کتابی است. یک ازید علمای اندرسانت می گفتن مطهون قرآنی مثل مطهون قانونی و اطلاقش هم از سکر مثل مطول سنت یک ازرم گوشن در مطول قرآن مطول قرآن یه مطن قانونی که به شمست و به اطلاق نیست ناظر به اصل تشریع پس بحث این که متکلم باز مقام بیان باشه،, باشه اون بحث اساسی نیست دقیق کردید یه بحثی که با تشکیز بدیم به قرآن خارجی برگردیم به شوارد خارجی برگردیم به عمل رسول الله به عمل احضره به عمل آلاتقه ها قدره خودمون اونها مجموعه شوارد رو جمع بکنیم البته این مسئله بوده از همون اول هم محل خلاف بوده از همون اول هم توش خلاف بوده این فردا نفته اصاسی که این نیست یک بحث قضیه هرگیه نیم یک قضیه خارجیه ما با اموماتی کتاب اطلاعات خدا چپار رو همیم فحث مقامون بریا بودن این هر خود روایات اهل بیر یک جهند روایات رسول الله یک جهند روایات با... متون و قرآنی یک جهند داره که باید با اونها بررسید بشه رسال الله علیه حالا